انان بزرگی هران کس که جوست، نخستش بباید به خون درست شست، که یا خود کشد یا کشندش به درد خوجسته کسی کو بزرگی نکرد. داوند بخشنده مهربان سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ برنامه‌ای که پنجره پنجره‌خای رو به مهتاب هست و من حمیدرضا هدایتی راد هستم و آقای دکتر فیدون جنیدی برای ما داستانهای شاهنامه را می‌خوانند سلام عرض می‌کنم خدمتتون شبتون بخیر درود بر شما شاد دیوید شما شاد دیوید <تصفح> یاد <همیگان تصفح> گرفتم همگون به شادی ان شاءالله ان امید خدا ما امروز با آقای دکتر فریدن جالدی دوران کیخستو رو در مورد صحبت کنیم اما میخواستم برمورد این شعری که در آغاز خوندید بیشتر بتونم بیشتر خب از هنگامی که بزرگی به قبضه شمشیر بسته شده کسانی که بزرگ بخوان که بزرگ باشند یا ناچارن دیگران رو بکشند یا دیگران اونان رو بکشند و قیدوسی میفرمد خوشسته کسی که بزرگ نکر چون با خون آلوده است البته از حدود 7000 سال پیش به این بر بلکه پیشتر از اون کابوچای باستان شناسی هیچ نشانه از جنگ نمیبین در ایران بزرگ باستان چون اگر جنگ باشه بعد یه ویرانی یک باره در یه محبت دیده بشه یا آتش تو زیده بشه یا جنازه ها آوار باشه. یا سر دست های و اینا هیچ اثری از جنگ پیش از هفتدار سال در گستره ایران بزرگ دیده نشده. جنگ ها با حضور زهک یعنی بیورست یعنی بابل باستان آغاز شد و کشتارها و سوختارها و قارت و مردم کشیها با حکومت اونا آغاز شد. و بیش در جهان ادامه پیدا کرد. ما بسیار نگذارم دیم از زمانی که جنگ به اومال دوم اتفاق افتاد. بله. یا از همین جنگ ای که ما در کشاید. این خواهی این هم خون برای چی ریخته میشه؟ برای حفظ بزرگی یک کسی. مثلا مثل صدام یا هیدلر. بله. بس خودیسته کسی که بزرگی نکرده باشه. از هنگامی که با خون آمیخته شده تا کنون همینطور ادامه داره ما هم... همیشه مدافع بودیم ما همیشه مدافع نه بودیم در من طول نه من نگم بله ایران همیشه مدافع بوده اما حالا این شعر در دنباری که من خوندم این خواهد اومد در داستان امشب که برای بله چی فیتوسی این شعر رو چرا این شعر رو خود رستم میفهمد که در جنگی سوراب گذشت خوندم حالا دو میگم که در مرگ را آن به قوبت که پای و اسب در آورد بجنب از جای کسی که سوار اس میشه برای جنگ در حقیقت در مرگ رو کویده حالا یا urumi کوشن یا که او کسی دیگر رو میکشه که جهان بشری به اینجا برسه که با فرهنگ خودش زندگی بکنه و همانند اون دوران پیشین جمشید یعنی درخشندگی نژاد آریا مردم تعاملشون داده داد و چون همه فرهنگی باشه و مرزها نباشه و قدرت طلبی سودجویی نباشه و بدون بال اونها خون و خون ریزی و درد و مرگ و کشتار هم نباشه. آرزو کنیم که جهان به اون مرحله برسه. اما ما این مرحله داشتیم و با دخالت بابلیان این مرحله به خون و آکستر و دود و آتش و آه همراه شد همونطور که خود شما فرمودید از شما شنیدم و از شما موختم اینجا سرزمین فروتنانه مردمی که جنگ نمیخوان مردمی که اصلا اهل جنگ نیستن اهل دوستی هست بله اینطوره منطقه دیگران اگر بگذارند بله متاسفانه اما من حالا در آواز قبل این اینکه این سؤالم رو مطرح کنم پرسیدم از شما در مورد دورانهکی خست حالا باز هم از حضورتون می پررسم. تلفن های برنامه 220 چهصد پ دو و 2020، چهارصد ۸5 دو و ۲، صفر و شماره پیامک ۳ ه پنج پنج, پنج، هشت. اینطور خونتون م می گفتن رو با هم شنیم دوستانم گفتن ما شبکه ما شما میتونید از طریق موج در تهران برمومه های شبکه فرهنگ رو بیشتن هم همطور برمومه ما به برشید من جمعه بورشی در شوشتر بودم به دعوت دانشگاه آزاد شوشتر برای سخنرانی پیرامون فرهنگ ایران و شانون فیدوسی و اونجا یاران گله می که این موج رو در تونن پیشتر در احواز گفته بودم این جمعه در شوشترم شنیدم که در خوزستان نمیتونم بگیر این بگیرم اینو. چندشش مامایت هفتونه نمیتونم بگیرم. معلومه اونجا نمیشه. ما اردن کردند. برای ایران باید MW یا AM. از طریق اون موج 558. یعنی برند روی اون موج. اون موج خب شما این اینه هیچ وقت مسدود نیستم. من میگفتم. واره گفتم. ازن 3558. اون 558. بسیار موج رادیویی هست. موج رادیویی هست. هست که باد اونجا رو پیدا کنند و, و ای ای یا ww اون رو پیدا بکنن 558 و پنجاه و هشت تو تهران فقط میتونیم میتون ما. خب مزبران چی 558 و پنجاه و هشت مزبران نمیگیره اختلال هستش بله متاسفانه بعد ها اختلال هستش به خاطر مثلا بعددی آب هوا به خاطر امواجی که وجود داره و این اتفاق میفته. تو بعضی از جه خیلی سخت میگه یا مثلا با شبکه های دیگه مثلا بعضی من پیومه دارم دوستان عزیز میگن که مثلا شبکه جوان برنامه شماست راستم هم میگم من خودم شهرستان شریدم. خیلی به سختی من خودم تونستم به سلا برنامه را بشم یه نقصی برای کار یه رادیویی که با نام فرهنگی داره کار میکنه نباید این چنین باشه طلاحربد اون کسانی که در فن این کار وارد هستن این متن رو بردارن که صدای آوای اوای رادیو فرهنگ به همه جای ایران برسه حتما در تلاش هستن این اتفاق نیفته اتفاقاً منم تماس کردم گفتن که حتما این کار رو انجام خواهند داد پس پایگاه تبادلانیمو یعنی که آدرس اینترنتیمون فرهنگ دات آی آر. از طریق ماهوارم تماماً پیشاپم اومده بود گفته بودن خیلی‌ها گفته بودن به عزیزان که خارج از کشور هستن ایرانیانی که خارج از کشور هستند این پیغام رو دادن و اونا برامه های ما رو از طریق ماهواره رو خاطبرد می‌شنون تو بخش تو ماهواره خاطبرد که میرید یه بخش داره رادیوها یه جا تصویرات یه جا بخشش رادیوها هستش اونجا میتونید چه تو رادیوها رادیو فرهنگ رو پیدا بفرمایید و برنامه های شبکه فرهنگ و همطور برنامه ما رو حتما بشنوید حالا ارزی که من میخواستم داشته باشم سوالی که از تو وقت... چرا اینقدر دورانه کیخست رو چرا هکیند خواهدی خب من که هفته پیش گفتم بله فرمودی من تو ها اصلا مثل که نمیخواد،, نمیخواد این قضیه اصلا دست برداره از سر ایرانی و این بدبختی میاره من الان بیاد ندارم که هفته پیش فکر نمیکنم. نقصد این بار در خود شاهنامه این کار به نقد کشته میشه توسط حصول خواهر خوهر پهلوان و بزرگ ایران به احرام پرگوشت به ساسانیان خیانت کردن و نام چوبینه برداشتن میبینیم که گردیه خواهر به برادرش میگه که نگر تا سیابوشت افراسیاب چه بردید جز تابش آفتاب یعنی کشتنش سرش بریدن روی سنگ انداختن زیر تابش آفتاب جنازش خشک شد و همون میز پور سپهبد چه کرد؟ میگه یعنی که خسرو پسر سیاه از ایران و توران بر کرد. این یک انتقادی که 2000 سال پ... بیشتر از 2000 سال دو... شاید 2700 سال بعد از که کیخسرو از کار که کورخسرو میشه به وسیله یک یک بانوی ایرانی، یک دختر ایرانی این ها مسائلیست که پیش اومده و ما فعلا چاری ندیم غیر از اینکه بخونیم و برای عبرت روزگار خوبه بله و ما الان در ما در در در جنگ رو نبرد ایران و ایرانیان و تورانیان رو در زمان در سپه سالاری توس در هفته گذاشته صحبت کردیم رسیدیم به زمان سپه سالاری فری بله فری ان دیگه زش پیش اومدیم با من از یه جایی می خونم چند بیت دیگه از هفته پیش که اینا رو بنیاد آوری بشه. بنیاد آوری بشه. نصفه ما هنگام جنگ ز پیمون بگشتند و از ناموننگ. یعنی هم ایرانیان هم تورانیان که قرار بود که آشتی کنن این کار نکردن. خروشی بر آمد هر دو سپاه به یک سر سوی رازگو. ز بس نو ری هندی درای همه آسمون اندر آمد ز نبود بر هوا مرغ را جایگاه، ز تیر و ز گرز و ز گرد سپاه، درفشیدن تیغ علماس گون به کردار آتش بگردن درون چون این گفت هومان به فرشید ورد که با قلب جوست باید دبرد، باید که باید آن قلبگاه گریزان براند به پشت, پشت سپاه. برفتن پس تا به قلب سپاه به جنگ فریبرز کابوس شاه، زهومان گریزان بشد پهلوان شکستن در آمد به رزم گوان. دل ایران به دشمن نمودند پشت، از آن کارزارندو آمد به مشت، نگون گشت کورس و درفش و سنان نبودند، هیچ نبودی ایچ پیدا رکیب از اینان. چو دشمن ز هر سو انبوه شد فریبرز بر دامن کوه شد چو گودرز کشباد بر قلبگاه درفش فریبرز و کابوس شاه ندید و یلان سپه را ندید به کردار و آتش دلش بردمید انان کرد فیشان به راه گریز برآمد ز گودرزیان رستخیز بدو گفت گیوهی سفهدار پیر بسی دیدهی گرز و کوپال و تیر اگر تو ز به بخواهی گریخت به باید به سربر مرا خاک بیخت فرزند رو تهیج میکنه. چو پیش اومد این روزگار درشت تو را روی بینند بهتر که پشت یعنی ننگ بوده برای پهلوانان که در بسپا در جنگ در هنگومی جنگ پشت اونور ببینند این باشند انسان رویا روی بره و کشته بشه بهتر از این که گریز بکنه یعنی پشتش کنه به دشمن نفیچیم زین جایگه سر در جنگ نیاریم بر تخم کشواد نگ چا بودرز بشنید گفتار گیف بدیدون سر ترگ گردان نیو و شیمون شد از دانشو رای خیش بیفشا بر جایگه پای خیش برازه برون آمد و گستهم هم عبا برته و زنگه یل به هم نام برته که اینجا میاد نشان از اون بخشی از سرزمین باستانه ایرانی که نامش اران بود و پایتختش بود برته که بعداً در زبان فارسی آمرته به تازی بعداً کردنش برده که است نزدیک به باکو یعنی در یورش مغلان ایران شد و اکنون یه روستای اونجا به جای اون هست برته نماینده نجاد ارانیانه و شما اینجا میبینید که به گودرز کشواد پیوسته هست یعنی اران به گودرز کشواد یعنی به آزربایجان و به کردستان پیوسته است این هم, هم از یک بودن یک شردمی میبیندن یک سردمی بود. گرازه برون آمد و گسته هم عبابرته و زنگه یل به هم بخوردن سوگندهای گران که پیمان شکستن نبودند آن کسی این رزمگه بر نتابی روی روی گر از گرز خون اندر حالت دیگر دگرباره از جای برخواستند. بدان دشت نو آوراستند. به پیش سپخ کشش و دریف نیست. که کابوس را بود چه جان عزیز. ریبنیز پسر کابوسهی که در نشانه رعی بنده، اون شهری بوده که پیشتر، پیش از نام نیشابور در خورستان حکرانی داشتن. و اگر به خاطر داشته باشید در افسوزهای نبرد فرود ریبنیز کشته شده بود. ولی اینجا می نمیزهنده اینجا کشته می شود. این اونا افسوز هست همه. به پیش سپه کشته شد ریفنیز که کاووس را با شد جان عزیز. برا ویخت چون شیر و گرد بنیزه نیزه برای ایشان یکی حمله برد به نوک سنان تاج را برگرفت دو لشکر به دو مانده در شکافت یعنی ننگش اومد بحرام که تاج ریونیز در میانه سپه در دست جنگ روی زمین باشه و به دست تورانیان بیفته. تاج رو با نیزه بلند کرد که همه شگفت زده شدند نبود روز پیکار ایرانیان از آن جنگ جستن سرآمت زیان همه سوی دا، آن دامن کوهسار گریزان برفتند برگشت کار. از او سرکشان آگهی یافتند. سباری ست از قلب بشتافتند. یعنی سرکشان سفاتوران وقتی که بهرام بهرام گودرز تاج رو بلند کرد، اونها آگاه شدن از این کار. که او را بگیرند از اون به برندش بر پهلوان سپاه. کمان را بذه کرد بهرام شعر ببارید تیر از کمان دلر از ایشان تراوان بخست و بکشت پیاده نپیچید و ننمود پشت سواران همه بازگشتند از روی به نزدیک پیران مهادند روی بگفتند گفتند کانک هجبر دلیر، هجبر دلیر حجبر دلر آنک اشاره به دور اینک اشاره به نزدیک ما اینک رو خیلی مبینی اکنون اما نه اینک ببینی اشاره به نزدیک. که در شاهنامه و در متون نظم نصر دور نخص همواره اینک به منیه. اون معنی اومده که در تران میگن اینوهاش آنک به اون معنی اومده که در تران میگن اونوهاش اینوهاش میشه اینک؟ اینک اونوهاش اون. میشه آنک. آنک در اونه و مونه در یکی از زبان های ایرانی از اینک رو میگن اینه ها در زبان زرفشانی هست مونه اونه یعنی اینجا اونجا اشاره دور به دور و نزدیک به هست اینک معنی معنی آنک اینجا دارن اشاره میکنن که خب اون پهلوان و جبر بلیر بود پیاده نگردد خود از جنگ سیر بپرسید پیرون که این مرد کیست؟ از آن نامدارون برای نام چیست؟ یکی گفت محرام شیر است که لشکر سراسط به دو روشن است. اوژن اوژتن در زبان پهلوی یعنی زدن کشتن. اون باقی یعنی کسی که شیر رو میکشه. یعنی در نبر با شیر پیروز ماشه و شیر رو میکشه. برو این چنین گفت پیران که خیز بهرام را نست راه گره از. کم کم ما اینا رو به همون باید اون زبان رو بخونیم که سرود، فردوسی سروده نرم نرداریم به اونجا پیش ده. مگر زنده او را به چنگ آوری دلشگر بر از آوری چوبش بشنید رویین بیامد دمان من یه بخش رو این چه برق زدم من با من اون حالا اینه میخونم اون اینا رو بعد به اون پیمان میدم بیامد به دو گفت که اینا هم دار پیاده چرا ساختی کار زار نباید که با این نژاد و گوهر به این شعر مردی و چندین هنر بالا به خاکنده رو باید سرت بسوزد دل مهربان مادرت که شما زدید رو من میخواست هم بگم شما خودتونم فرمودید. این ورقهایی که می بعد می دنبال اون اشعاری که افسوده نیست این باعث میشه که بفرمایید قرارم شد یه بخشهایی رو بفرمایید که من این آره. بخشی که فرگ زدم و خوندهنشد دوباره میخونم الان نخونید یه سبخت می س و کار بدونه یکی از برای پر... کسا پر... در همین باره در انتخاع برنامه هفتی قبل رلان این شد که آقای دکتر جونیدی بفرماید افسوده ها را از راه تطبیق نسخ،, نسخ یافتند یا برداشت های شخصی خودشان است افسوده ها البته تطبیق نسخ بر سر شاهنامه بوده منتها بعضی از واجه ها در نسخ مختلف همه همه دگرگونه و بعضی از این نویشندگان مفهوم و معنی بعضی از های رو متوجه نشدند اما من این رو چند بار توضیح دادم. هم توضیح میدم. که من برای ویرایش شاهنامه بیست و هفت سنجه بخار بردم. یکی از این سنجه ها نخستین اینها زبان عوستاییه. که بر اساس آگاهی که ما از زبان عوستایی داریم اگر اینجا ایرادی پیش بیاد ما اون رو باید درستش کنیم. یکی از اینها زبان پهلویه. بسیار از این واجه که در زبان پهلوی معنی داره و به زبان فارسی زب زمان فردوسخم رسیده وقت این ها دقیقا نمیشن دیگان شوانامه معنیش نفهمیدن به صورت‌های گوناگون نوشتن. به عنوان مثال یک بیت هست جایی که شماساس و خزربان اومدن به زابل به سیستان و میخواد سیستان رو بگیرن و مهراب و کابل خدای آگهی بهش میده که فوراً حرکت کن بیا که اگه ثنای سیستم رو خواهند گرفت و زال شبانه خود تو میرسونه بیان داغ سه جای سه چوب تیر توی دشت کارگاه اونها وقتی که اونها نگاه کردن تیر تیرها به نیزه میمونه و من در همون زمانم شر دادم که این کمان چرخه یعنی به صورت چرخ با چرخ رو میچرخوندم نیزه های بلند رو پرتاب میکردم توی لشکر یا توی باروها و دجا. این کمان چرخ بوده که در شانامه دو بار در دست سیستانیان میبینیم یک بار در همون جنگ یک بار هم در نبرد با کاموس کوشانی دیدم من از اینو با... این با... میچرخ و میچه میکشه بعد اینو یک دفعه دقا میکنم بعد اینطور بعد میگه که اگر خزروان شیر نکردی چنین نرم کردن به خیر با... ما امروز چیز رو نداشتیم. یعنی این نبرد با زال رو نداشتیم. این خیر رو در نسخه های مختلف به صورت چلگونه آوردن. تیر آوردن، نیز آوردن، به نیز آوردن، چیز آوردن و هیچ کدوم معنی درستی نداره. در حالی که این خیر هست. خیر در زبان پهلوی هست. خیر یعنی ثروت و دارایی. و این در زبان مراغیان در علامات هنوز باقی مونده. اونجا میگن که هر به صورت هم در اومده مثلا میگن که از نوهران مثلا قرض نکن یعنی کسانی که نوکیسی هستن تازه به دارایی رسیدن از اونو نباید توقعه چیزی کرد در بین زتوشیان شریفاباز یه جشن یعنی جشنی هست به نام هیرونبا یعنی که یک کسی میاد و در خونه ها در میزنه و نخود و لوبیا و بونشن میگیره برای پختن یک آشی که باز بین همه تقسیم میشه وقتی که اینا رو میگیره به اونا میگه هیرون با یعنی هیر یعنی ثروت و مال دارایی بر تو باد بنابراین در بین مراغیان درعالموت و در بین زشتوشیان ساکن چریک بوده هنوز این واجی به صورت هیر باقی مونده و این خیر نمونه کهانتر از هیریه و هیره یعنی مال دارایی میگه که اگر خضروان شیر گردن به مال و ای که محراب و کابل خدای براش فرستاده نرم نمی کرد ما دوچار این خب هیچیک از شانامه ها و هیچیک از در حقیقت تصیات شانامه و کسانی که شانامه رو بیرش کردن این معنی رو میدن این منی در زبان است. این حال من یکی خوندم تا شما بدونیم. که تا زبان پهلوی ندونیم نمیتونیم یکی از نخستین و برترین یکی از نخستین و این صفت مانه برترین نیست و برترین اثر زبان فارسی رو که از زبان پهلوی ترجمه شده پیدا بکنیم. بنابراین شرط زبان پهلوی در این چیزها هست. در این افسود افسود حالا بهثال دیگه من میارم مثلا اونجا که ابلیس میاد و خالیگر زرحاک میشه خوراک با میگه خورش درده خواهی دادش نگست در تمام نسخه ها اومده خواهی ویش کدوم از ویراشگران هم اینو تغییر بهش ندادم فقط یک نسخه هستش که در متو... نوشته و هشت در موضوع واتیکان نگهداری میشه و اونجا نوشته که خورش درده خاک دادش ن و این درسته. برای اینکه وقتی که ما فرهنگمون با فرهنگ عرب آمیخته شد، هر جا که گاف بود می‌نوشتن با کاف می‌نوشتن. مثلا می‌نوشتن اخگر رو اخکر می‌نوشتن، می‌نوشتن با گاف فارسی. یا مثلا اگر جه بود زمین می‌شدن، زندبیل می‌نوشتن. باید بگم با ذای فارسی این پیل. فارس، پیل. متأسفانه در تم بیشتر زنده پیل اومده. و مصححین نفهمیدن که اینو باید ژ خب اگر پی بود بمی نمیشتن مثلا،, مثلا پدرام رو میشن بدرام بعد مثلا با بای فارسی یعنی پی خب اگر این خاک در حقیقت با گاف فارسی خاک میشه خاک یعنی تخمو به زبان پهلاوی و بعد از این خاک در بعضی زبانهای امروز ایرانی ما سراغ داریم یا به صورت خاک باقی مونده مثل زبانهای مثلا زبانهای اردستان و لوری و اینا میگم مثلا فرض کن که اردوال کورشان و اینا یه وسط خواب باقی مونده یعنی گفتش افتش شد خواب و این همون واجیه که در خاگینه هنوز باقی مونده با من می‌خواستم و در یک انگلیسی هم گافش باقی مونده خب تو پهلوی ندونادم نباید است به نظر من نباید یک چین کار عظیمی رو بدون داستان پهلوی انسان بس به سوش ببره این دو تا یکی اینکه باید اون شخص که در شنامه رو می‌کنه کاملا روز و رمزه شعر فارسی رو بدونه و به زبان فارسی باید خوب مسلط باشه به زبان فارسی مسلط بودن مفهومش اینه که باید پهلوی بدون عوستا بدونه فارسی فرزند پهلوی است یعنی بدون عوستا و پهلوی کسی بگه من فارسی میدونم حالا یکی از استودان در گذشته دانشگاه تیران روان شد فروزانفر با افتخار میگفت که در زبان فارسی چیزی نیست که من ندانم و پیشتر از زبان فارسی چیزی نیست که من بدانم خب این؟, این ناقص میشه آگاهی انسان باید حتما زبان پهلوی و زبان فار... عوستویی بیاری زبان فارسی نو بیاد تا ما بتونیم که شانمار بیراش کنیم یکی دیگر این که راز و رمز شعر فارسیر انسان باید بدونه من را یک بار گفتم ولی بینم که شنوندگان تازه میان خب گوش کنند خب خیلی بله. بله. موقعی که گردآفرید میاد از دشت بیرون در جلال حرکت میکنه و میفهمه که در حقیقت هماورد سهراب نیست و خب کلا خودش میفت و گیسوانش آشکار میشه و به دانست کاویخت گردافرید یعنی گردافرید دانست که سهراب دلش رو آبیخت و گیسه او. معنی شد زبان فارسی. خب حالا بعد وقتی که گردافرید برمیگرده به دژ سهراب با خودش اینچنین میاندی شد. شگفت آمدش گفت از زیران سپاخ چنین دختر آیا با آوردگاه آو سواران جنگی به روز نورد همانا با عبرندران هم کرد. خب اگه نیک بینگرید میبینید که اینجای ای اگر کمه. در بیت نخست بایده که اگر دخترانشون این چنین هستن پس سواران جنگشون چطور؟ یه هست. و اگر رو فردوسی گفته اما هیچ کدوم از این سحفان و شانومه نفهمیدن رو همه این شانومه موجود همین نقصور داره حالا من میخونم تا ببینید فردوسی اگر رو چطور گفته شگفت آمدش گفت از ایران سپاه چنین دخت عرایت با آوردگاه سواران جنگی به روز نبر آه، آه، همون همانا با عبرندان و عبرندان را فاید کرد اونجا دخت رو نویسندگان سر هم نوشتن، همه دیراشگران و مسرحان شوانام هم اینا همونطور به صورت نادرست نوشتن. اینا چیزیست که از زبان فارسی باید کمک میگیریم البته اینا به شما بگم در سر تا سر شوانامه من همه اینا رو به صورت نظر خودم در زیر نویست دادم یعنی یه چیزی رو تغییر ندادم. شینیش گفتم این به این دلیل باید اینطور باشه شما یه شاهنامه رو کامل آوردید حتی افسوده ها رام آوردید حاشی هم حاشی هم برات زدید با. و اومدید اون بخشهایی که مربوط میشه که افسوده نیستش مال خود فردوسی بزرگ هست اون رو مشخص کردید با حروف درشت با حروف درشت خب حالا بیسته هفت سنجه من همه بیسته هفت سنجه رو بگم؟ نه <تصفيق> وقت نیست دیگه نه نیست نه باید این جوانی که این پرسش کرده بدونه که هم به این آسونی نباید به شاهنامه نزدیک شد چنان که دیگران شدند تا این آگاهی ها رو بیسته در زمین سوارید شناخت از میدان در زمینی ورزش های باستانی سپه سپهرانی، میدان دو ورد تاریخ، جغرافیه باستان همه این چیزهاییست که انسان باید بدونه تا جرأت کنه به شاهنامه نزدیک بشه و من با این 27 سنجه به شاهنامه نزدیک شدم شاهنامه رو بوسیدم و کار خودم رو در 30 سال به کار بردم کار خودم از روی سلیقه خودم نبوده نه از روی آگاهی بیشماری بوده که من از فرهنگ ایران به دست آوردم خوشبختانه مادر ایران من را حمایت کرد هدایت کرد به سوی اینکه کارنامه فرهنگ و کارنامه عزت و شرف و سرفرازی ایرانیان رو از ستمی که نسخه نبیسان و افتحاندگان به شاهنامه تو این هزار سال در او وارد کردن من رها بکنم و این کار بیاری از یزدان شد خدا عمرتون بده چرا این کارو کردن؟ حتی پیشم میخواستم بپرسم چرا این گروه گروه دو... از افزایش ها دست این نمیسندگان بیسواد بوده معنی رو نمیفهمیدن مثلا همین خیر رو نمیفهمیدن چنین گر... نکردی چنین نرم گردن به خیر هیچ کس معنیشی نمیفهمیده بنابراین یک نمیسه به چیز یکی نمیشه به نیز یکی نمیسه به چیز هر کسی هیچیز نمیسه شما شاهنامه خالق مطلق رو نگاه کنی یا شاهنامه مسکور نگاه کنی ببینید چقدر واجه ها که هیچ کدومشون درست نیست خب این یه, یه ستم رو نویسندگان کردن به، نه تنها به شاهنامه بلکه به دیگر دیوانها و دیگر نویشته و حتی نصر و اینها اون اندازه که ستم به شاهنامه شده به دیگر نویشته نشده شما مثلا وقتی میبینید که دیوان امیری رو میخونین میبینید هر دو سه صفحه یک بار مثلا یک چیزی ممکنه که تغییر پیدا کرده باشه اما در شاهنامه لبریز از اینجا این یک گونه از افسده هاست یک گونه هم که از افسده است که مزدوران و خودفروختگان زمان مدود به فرمان مدود جمع شدن شانومه ما رو به دست گرفتن اون چی که شاهنامه پیشتر بود از بین بردن که به دست مردم مل... نرسه و بعد اون شاهنامه ها رو, دا... داستان ها رو باز کردن میان اون عبیات افضاده رو گذاشتن تا بتونه نام, نام نامبارک محمود رو هم بیارد و به این ترتیب شاهنامه هم برسونن به نرزیک به 60 ماهی ما هیچ شاهنامه ندهیم 60 خالقی مطلق 48 زر قریب همین همی اندازه منم هم تقوی همین اندازه چون همین اون افضاده هم من آوردم دیگه بله به پنج هزار نمیرسه اما خب اونا گفتن شهر هزار به بوده. اون وقت نام محمود رو بیارن و ستاش های دروغین محمود رو این ستم بزرگ اون این ستم بزرگ در زمان موجود شد تو من حساب کردم سی سال بعد از اینکه فردوسی از جهان پرواز کرد و محمودم به درک واسه شد اون وقت اینا خواستن که این شاهکار عظیم جهانی رو هم مثل بقیه‌ی احشوری که اون خود فروختگان مثل انصوری و اسجدی و فرخی و اینا رو کردن به نام محمود میسوروپیان و سلمی میجستن این هم به نام محمود کنند مونتا فرتوسی در آغاز و پایان شاهنامه دو بیت داره که نشون میده که در آغاز میگه که وقتی که امیر منصور پشتیبان مالی فرتوسی رو می‌کوشن میگه نه مورد بینم نه زنده به دست نهنگان و مردم کشان ستن باد بر جان او ماه و کجا بر تنش شد بستگان یعنی ستن باد بر جانش همواره کسی که امی... امیر منصور ما رو خوشت اون کسی بوده محمود بوده یعنی محمود اندکی این کسانی که شاهنامه رو بیرش میکنن موظف نمی بینن خودشونه که مثلا تاریخ رو هم بخونن حالا من نمیگم برن بگیرن. اما چون این یه چیزی در نهاد خود انسان من از کودکی به این پدر من روان شد با اینکه مرد اندیشمند و نویسنده بود اونم وابرزش باستانی بود یعنی روزگار گذنه بود و من خاطری از اون دارم بد نیست اینجا جوانان بیدن که ایشون می‌فرمود که ما در زمان احمدشا بود من و ملکوشارا با ها رو موتمن دفتر با هم در مشهد صحبت می‌کردیم که راه چاره این درد بیدرمان ایران چیه؟ با اونجا رسیدیم که باید ایرانیا فرهنگ بیاموزن سواددار بشن بنابراین ما در مشهد یک مدرسه اکابر درست کردیم ام، که من کشارا باهار عربی و فارسی درس میداد مطمئن دفتر ریاضی درس میداد و من هم زبان روسی و زمینن ورزش باستانی و چون پدر من من کشارا باهار قد داشت با. شدری زیاد شد. پدر من یکی زیباترین و باشو خودترین چهره های جهان را رو داشت روانش شد. مشاله در فرزندش هم هست. <تصفيق> شما با مشالد... امیدی هستان. اون وقت او مدیر بود و زندن زبان روسی درس میداد و ورزش باستانی. من از پدرم پرسیدم شما ورزش باستانی چی گفت؟ زرب و زنگ و کبادو میل آورده بودیم توی مدرسه؟ خود من دختر میشدم میرفتم وسط میون‌دوری می‌کردم این کسانی که اومده بودن زنگ ورزش همه ورزش باستانی یعنی در نظر ایرانیان خیلی از ورزش باستانی چیزی نبود وقت فکر نمی‌کردم باید چیزی با نام دمبل مثلا این کار یا اینکه اینجوری جوری مثلا این کشتی هایی که از شرق آمده اومده اینا رو کشتی نمی‌کشتی مردانه بود کشتی همون کشتی که کشتی بود بود, رو خونه بود. رو سینه رو سینه ای اون که خرد زمین نمی‌کوبیدن دیگه خب میون طورو بودن اگه دو نفر خوشش که زانو یکی میخورد و زمین دستش تمام بود جدا که دیگه بیشتر از زانو به زمین نخوره و این من این رو هم گفتم که جوانان بیدار دل ایرانی بدونن که یکم چنین اندیشه‌ای بوده یعنی سه نفر در یک گوشه از ایران با خودشون اندیشیدن که برای نجات ایران از این ستم و این بلاهایی که در اون زمان بود باید ایرانیان فرهنگ بیاموزند، سربدار بشن و بازشم هم جزبهش بود من تا اونو از یه مدرسه آغاز دادن کاری که من در بنیاد نشور کردن برای ایرانه یعنی برای ایران کردم نه از یک مدرسه درسته که در بنیاد ما درسم میده اما دیاری از من به زودی که برنامه ی... نی سات درست میشه و ما میتونیم اونجا حتی جلسات درس رو هم تو اون بذاریم که در دورترین نقاط ایران همه این درس‌های پهلوی آرسوی اینا رو بخونن یاد بگیرن و اون مسائلی که در انجامان شانوم خوانی هست و دیگر انجامان ما در همه جای ایران و خب جهان همه بخونن ولی تا حالا این کار نشده ولی به زودی این کار خواهد شد بیاری از اون. نمیده خود. این همه اینها مقدماتی بود و من اون کسی که این زوال پرستش کرده، ازش خواهش میکنم پیش کوختار با شانومی فردوسی با ویروس شانوم فردوسی منو بخونه تا ببینم من چه کار کردم. نمیده خود. نخامید. ادامه داستان من نهی میگم قصه ها نمره کم نکنی یادم میفته تو زهنم از داستان شامنان شا. <تصفيق> خب. <تصفيق> اینجا وقتی که نبود روز پیکار ایرانیان از اون جنگ جستن سر آمد همه سوی دامن آن کورسال و ریزان برفتن برگشت کار سواران و توران همه شاد دل، زرنج و گشته آزاد دل، که خیش باز آمدن، گرازنده و بعضان ساز آمدن. دوان رفت بهران پیش پدر، یعنی پیش گودرز رفت. که ای پهلوان یلان سر به سر، بدان گه که آن تاج برداشتم، به نیزه به عبرندرف راشتم، یکی تازیانه من گم شده است، چو گیرت سفهدار پیران به دست به بحران بر چند باشد فسوس فسوس اینه افسوس اینه ای ریشخند اپل برابسته بود اپل سوچ اینه از دور سوزندن من این رویت بارا گفتم اینه ریشخند کردن از دور سوزندنه یکی, دور یکی دور دور دو رو ممکنه از نزدیک بسوزندنه شما یکی ریشخند از رویت برابی کنید میشه افسوس منطقه افسوس امروز از زبان تداول مردم یعنی دریغ حیف اما نه بله. افسوس یعنی ریش خند کردن خود ریش خندن ریش یعنی جراحت یعنی خندیدن به جراحت کسی بله, بله. خب این میگه اگر سپهدار توران این رو به دست بگیره به بهران بر چند باشد فسوس جهان پیش ششمم شود آقنوس یعنی تیره میشه رنگ جهان شوم تیز و تازانت باز آورم. اگر چند رنج دراز به بدو گفت گودر ز پسر همین بخت خیشندر آری به سر. ز بحر یکی چوب بسته دوال شوی در دم اختر شونفال، چون گفت بهرام و جنگی که من نیم بهتر از دوده و انجمن، به جایی توان مرد کایت زمان، به کجی چرا برد باید گمان؟ به دو گفت گیوه برادر مشو فراوان مرا تازیانه است نو چون این گفت با گیف بهرام و گرد که این ننگ را خورد نشت نتون شما رازر رنگ و نگار است گفت مرا آن آنکه شد نام با ننگ جفت یعنی شما به من میگین که تازیانه میدم من بدارم به شما میگه. که اگر تازیانه من در دست تورانیان باشه نام من همراه ننگ خواهد شد گریدون که تازانه باز آورم او سرز کوشش به گاز آورم یا من تازیانه خودم را باز میورم یا اینکه در جنگ سر خودم رو به گاز میاره یعنی سر من بریده میشه بر و رای یزدان دگرگونه بود همان گردش بخت وارونه بود بسمت که تا بعد از این از اون سرکشان آگهی آفتند سرکشان توران آگهی افتند که بحرام اومده و اون بقیه مسائلی که بنده قبلن خوندم حالا بل شما اگر